نگفته پیداست که انکبوط چه برای تحمل پروانه تنیده است. خستم خیلی خستم.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 مثل یک بازی خیلی ساده مهره رو مهره بعدی افتاده حتی کار من نیست که بگم چی خوبه چی بد اما همه گاهی سواریم یه وقت هم پیاده من دیگه نیستم بست این بازی. من دیگه نیستم تو هم میوازی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 وقت که رفتن دیدن اوستا رو قبر آقای مریمم یه آبی میریختم. اون روز دیدم یه خانوم با یه قیافه اداری و مرتب اومد سر قبر آقای مریم و وایستاد. تا حالا ندیده بودمش. عینکش افتابیشو برداشت، کمی نگاه کرد. به زنو نگاه نمی کنم ولی برام جالب بود کسی بیاد سراغ آقای مریم. کمی که بیشتر دقت کردم، دیدم که مریمه. موهاش خاکستری شده بودن.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 اون روز فهمیدم که مریم این کارو کرده تو تموم این سالا مریم مواظ آقاش بوده از دور اون لحظه از تمام قضاوت از تمام کمک نکرداممون و به خاطر تمام اون تنهاییایی که مریم کشیده بود ازش عذر خواستم مریم مثل همون سالا لبخند زد و گفت حداقل این بود که یاد گرفتم کارایی که با من کردن با کسی نکنم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 از روی حرف آدم نظر نظار که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما من از سوای تو پرم خالیم از گلایه ها من تو رو بابر میکنم تو هم به سمت من بیا به پاس اشنام که شده رو بر با حرف منو دوباره زندگی کن بر رو منو نکن که خیلی صد از نساز زخما زن رو منو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 مثلا یعنی ما کاش میدانستیم هیچ پروانه پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی‌آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رؤیای آب نی می از خانه که میایی، یک دستمال سفید پاکتی سیگار گزینه‌ی شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور احتمال گریستن ما بسیار است دامن کشان ساقیه میخارانم از کنار یاران مست و گیز و افشان میگریزه در جامعه می از شرنگ دوری و از غم مرجوری چون شرابی جوشان ای بریز دوران دل بی لرزون ز غم اشتی دشانگاران ساقیم من خاران است کنار یارن مست و گیسو افشان می گورین دارم چشمی گریان برهش روز و شب شمارم تا بیاید آه دارم چشمی گریان برهش روز و شب شمارم تا بیاید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 اینجا رادیو 18 بنفش بود لطفاً ما رو با کسی مقایسه نکنیم. لطفاً سعی کنیم کلا قیاس نکنیم ما سعی داریم خودمون باشیم حالا چه خوب چه بد چه قوی چه ضعیب، چه متوسط مهم اینه که خودمونیم و سعی هم داریم خوب باشیم اینجا رادیو 18 بنفش بود رادیویی که قرار مهربون بشه سعی کنه مهربون بمونه شما به قسمت چهارم از فصل گوش دادید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 گل دلفری به سرخه باقه من پس بوی گل برگت تو کو عشق من چیزی بگو قلبی بسوز چشم من خسته به دوست تانسیمه سرد شبست ساخه یه تو میوزه به صورتم من هنوز دیوونتم شما من پای سعدی بگو، کو موسمه حری بسورخ فوق من پس بوی گل بارگه تو من اشتمان چیزی به قلبی بسوز چشم من خسته بدون شب منه زلال چشم یه چشات گونه واسه من آرامش بارون نبا عشق من تنها نزاد کردی من و تا تو توی باقه گهنه و پی نداره این فصل فصل پاییز فراگی نه نبرد نریشه شیفته یه سنگ همیشه گل دلفری به من تا نه به قانون همیشه به تمام چیزی بدون قلبی بسوز چشم من خسته بدون به جنون کشیده وقتی نفس از رنگم اندام تو خفاست زنگ دل فری به خنده‌های تو نیمه رسیده نه